داروخانه چی خیابان رانوار چند بار با مهربانی پانسمانم را عوض کرد. زخم را با مرکورکروم کوم صفونی می کرد و سفارش میکرد کمتر راه بروم و کفش پارم را کنار بگذارم و کفش مناسب تری بخرم. هر بار که پیشش میرفتم قول میدادم به توصیه هایش عمل کنم. ولی خوب میدانستم که قبل از پیدا کردن فیات سبز چمنی کفشم را عوض نخواهم کرد. سعی می کردم کمتر از روزهای قبل راه بروم. بعد از ظهرهای طولانی، توی اتاقم در هتل فرمیت می مندم. به گذشته و حال فکر می کردم. اسم ساکنان خیابان چهارم آلبر دومون را از توی کتابچه مشترکان تلفن یادداشت کرده بودم. بوشیرج پاسی سیزده پنجاه و یک شرکت مالی ملکی تروکادرو پاسی دوتومب جه پسی سفر سه نود و هفت دوپون آ پسی بیست و چار سی و پنج گودوین خانوم سین پسی چلو یک چلو هشت گرونبرگ آ پسی سفر پنج دو سفر مکلاکلان جه و پسی 0438. سولیر وجود نداشت به تک تک این شماره ها زنگ زدم و گفتم میخواهم با آقای سولیر و دوشیزه جکلین بوسرجان صحبت کنم ولی این اسمها برایشان ناشناس بودند شرکت مالی ملکی تروکادرو جواب نمیداد شاید شماره صحیح همین شماره بود دفترچه نشانی‌های پدرم بین بقیه مدارکم توی جعبه مقوایی آبی بود یک شب روی میز کافه جاش گذاشته بود و من هم فرو کرده بودمش توی جیبم در ملاقات‌های من هیچ وقت حرفی از آن نزده بود گویا گم شدن دفترچه برایش اهمیتی نداشت شاید هم فکرش را نمیکرد دست من باشد به گمانم چند ماه قبل از آنکه در مه مون ناپدید شود این اسم ها زیاد به دردش نمی اثری از سولیر با حرف سین نبود و بین آدرس ها هیچ اشاره به فسومبرون لا فور بود بعضی شبها از خودم میپرسیدم این جستجو به جایی میرسد یا نه اصلا چرا شروعش کردم یعنی حماقتم را نشان میداد مدت پیش شاید قبل از دوران نوجوانی اینطور طور حس می کردم که اصل و نسبی ندارم. یادم می بعد از ظهر یک روز بارانی مردی با بارانی گابردین خاکستری و تحریش برگه در کارتی لاتن پخش می کرد. توی آن برگه ها پرسش نامه بود که مربوط می شد به یک تحقیق در مورد جوانی. سوال ها به نظرم عجیب می آمدند. ساختار خانوادگی شما چگونه بوده است؟ جواب داده بودم ساختاری نداشتم خودتان فکر میکنید پسر یا دختر خوبی برای والدینتان هستید؟ هیچ وقت پسر کسی نبودم با تحصیلاتی که پرا گرفته اید قصد دارید به پدر و مادرتان احترام بگذارید و خودتان را با محیط اجتماعیتان وفق دهید؟ تحصیلاتی نداشتم پدر و مادری نداشتم محیط اجتماعی هم نداشتم ترجیح می دهید انقلاب کنید یا به تماشای چشماندازی زیبا بنشینید. تماشای چشمانداز زیبا کدام یک را ترجیح می دهید؟ تداوم عذاب یا کوتاهی خوشبختی؟ کوتاهی خوشبختی می زندگیتان را تغییر دهید یا تفاهم از دست رفته را دوباره به دست بیاورید؟ تفاهم از دست رفته را دوباره به دست بیاورم این دو کلمه مرا به فکر فرو می بردند. ولی تفاهم از دست رفته شامل چه چیزهایی می توی اتاقم در هتل فرمیت از خودم می پرسیدم. با وجود بی اصل و نسب بودن و ناب دوران کودکیم، آیا دنبال پیدا کردن نقطه ای ثابت یا چیز دلگرم کننده ای مثل چشمنداز نیستم تا به کمکش بتوانم دوباره پا بگیرم؟ شاید از بخش بزرگی از زندگیم که مثل پایه محکمی زیر شنهای روان بود اطلاع نداشتم. بنابراین دلم را به فیات سبز چمنی و رانندهاش خوش کرده بودم بلکه این دوره را کشف کنم.